بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى الدرس 30 رفع التقاء الساكنين درس رفع و برداشتن انتقای دو تا ساکین ساکین یعنی دو تا ساکین انتقا یعنی ملاقات از جای ام برداشت. رفع یعنی برداشتن التقا یعنی ملاقات کردن یک جا شدن ساکنین یعنی دو تا ساکین رصد رفع التقا الساکنین یعنی برداشتن یک جای شدن دو ساکین قومیدم. آ. بارداشتن، یک جا شدن، دوساکی. بوم. راف اول التقاء التقاء برداشتن برداشتن یک جا شدن یک جا شدن دو ساکن دو ساکن رفع انتقای ساکنه یعنی برداشتن یک جا شدن دو ساکن صفحه چهلو هشت هستیم، صفحه چهلو هشت، خب، قراعت و نون تنوین بلکسر، سوال این است، اصل جریان قضیه این توریست، خب دقت میکنیم، ما زمان کلمه رو میتونیم بخوانیم که دودان ساکین کناره هم نباشه، بلکه یک ساکن باشه یک حرف دیگه حرکت دار باشه دو دانه ساکن که, که یک جای بیشه قابل خواندن نیست. برای اینکه یک کلمه یکی دو ساکن در کنار هم هست و قابل خواندن بشه و باید چی کار کرد؟ باید یک از ساکن ها رو برطرف و یک دیگرش باقی بیموند. خانونه ای که بالای مایک خود کلیک کنیم سبای شما قد بشنیم تایجه شدیم؟ باید یک از ها رو برداریم یکیش که بود وزم قابل خواندن هستیم آره؟ برای این که ما یکی از ها رو برداریم چطوری برداریم؟ اینجا جواب میده قراعت و نون تنوین بلکست یعنی خواندن نون تنوین رو به صورت کسره خواندن نون تنوین رو به صورت کسره آره زیر متوجه شدیم؟ متوجه شدیم یا خب اول نون تنوین کجاست؟ ببین اینجا وقتی ما نوشتمونیم برحمتین خب در خودش پس که لازم به نوشتن نیست اونجا واجه های چی رو نگاه کنین برحمتین بعدش دال ساکینه نه؟ بعدش هم خلوه هست برحمتین دال اینها رو چی رو بے تین دو تا ساکن پر deputado اس حال نما میشه اه আরে آره سوال منم نه چی رقم میخواید تین خب بے رحم تین اونجا که رفت کردیم دیگه انتقای ساکن یک ساکن خود دال هست و یک ساکن دیگه هم نون تنوین هست بے تین وقتی که میگیم بے رحم تین هم تنوین در عالم اون نون ساکن در آخر دیگه نه متوجه که میشیم دیگه انشاءالله آنه در چی سعی کنین قسمت بعدش برحمتین نون شو ساکینه دیگه دیدیم یا نه خب آخرش چی کار همون نون ساکین را تبدیل به که میکنیم او به برحمتینیت خلو حالا دیدیم که خوانده شد برحمتینیت خلو, خلو. برحمتین یا نه، نمبر. برحمت نصف برو آره، نونش رو چی؟ کسره داری یعنی نون تنوین رو در حساب کسره میلگیم اینجا میبینین دیگه قسمت اول، برحمتین با حالت تنوینی نشته، درست دالم دال هم ساکینه خوانده نمیشه در قسمت بعدش، آنمون تنوین رو به شکل زنده در آورده شده برحمتین، نون ساکین واضحه دیگه نه؟ و قسمت آخریش حالت خواندن رو نویشته. به رحمتی نید درسته. از نظر خواندن درسته. اولش از نظر نویشتن درسته. در نویشتن به شکل اولی می ولی در خواندن به شکل سه باید خواند. سعی شد؟ متوجه شدیم دیگه نه؟ در اینجا به رحمتی نید به شکل... چی هست؟ به شکل کسره هست خب شکل کسره لهوانین فابو لهوانین فابو اینجا اون لحوان واشه چی داره؟ تنوین فتحه داره باز هم همونونش را کسره میدیم نون تنوین رو کسره میدیم برست چه؟ آره خب در آخری خیرونیق معن. خیرو نق برست؟ درست؟ همه زنها واضح دیگه فامیدیم یا نفامیدیم؟ چند نفر نفامیدن؟ نفامید بس شما نفامیده نره؟ در کجا؟ آ دال رو ببین دال با نون جنگ دادیم اگر نون رو با دال جنگ ندیم دال خانده نمیتونیم دیگه چون که دو دانه ساکین کنار هم بشه ما یک شیره میتونیم بکنیم یک دیگه هم تا میمانم درست شو؟ آه به رحمتی نید درست؟ آره خب در لحوان فابو و خیرونیت معنه که انشاله مشکلی نیست داره؟ آه خیلی عالی خب حالا از تدری بش نگاه کنین از علی علارفاء التقاء ساکنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما من آمن و عامل صالحا فلهو جزاء انل حسنا جزاء انل حسنا اینجا خب خود نون نیست نه ولی ما نون رو ایجاد میکنیم چرا چون که نون نون تنوین هست فهم می دهیم؟ جزاانی جزا الحسنان جزاانی الحسنان آره؟ یا زکریه اینا نبشیرو که به غلامی نسموهو نسمو. نسمو یحیاب یعنی. واضح هم؟ لم نجعل له من قبل خب این تا این قسمتش تمام حالا درس بعدی رو بخونیم فکر می یا نه؟ نداشت تجیید می‌جوی خانم اما این قسمت که علفی که باهاش قبل از نام بعد از نام موبایل می‌گیریش. اینمی عالیه که باهم عالی فواید سریع می‌کنند. میگه ای بجای مثلا ما میگه اینه نهوس اینمی یه نو نزیر در حالی که عالیه با اون درستم. اون زمان است که ما آغازی با همون کلمه کنیم. مثلا وقتی در خصم کجا شد، خصم. آه خسنا ببین وقتی ما از کلمه خسنا آغاز کردیم میگیم الحسنا آره ولی وقتی که آغاز نکردیم علیف علیف وصله دیگه پس باید قبلش رو خود الان وصل کردیم سعیه شد؟ سعیه شد؟ متوجه سعی شد؟ شدیم و منظور که فامله هست آره؟ خب قسمت بعده هو العلم الدرس الحادية والثلاثون درس سوى يك الحروف المقفعة حروف قطعا قطعا جدا جدا درست مقطعا قطعا قطعا جدا جدا و هي صرف عليا حق نمسكه وحیه یعنی این حروف مقتعه ها؟ حروف جدا جدا مقتعه حروف جدا جدا وحیه یعنی این حرف مقتعه اینمی حروف هست حرف ساد یک را دو سه تا چار عین پنج تا آخرش نون سیکو وقت همشون بشماریم کلیگشون میشه ده تا درست معنی از این جمله اینطوریست راه علی عليه السلام حق است و ما به این راه محکم این راه رو را محکم میگیریم فا معنی دمی و هي صراط و يعني و یعنی و و این حروف مقطعه باز و, و این من هم تاجا آره آره صراط و راه صراط راه ها علیین که علی السلام راه علی حق است حق است نمسکو نمسکو چی معنا باشه؟ تمام سوب می, می چنگ میزنیم به این راه. خب به نشون میگن منظورش همین است ما محکم میگیریم این راه. همین نمسکو محکم گرفتن. آره آره محکم میگیریم این راه. ما محکم میگیریم این راه؟ بله, بله. ما بدون ولی ما ما بله ما محکم میگیریم این راه راه. تمام تا اینجا؟ خب فی المصحفی، ببین این حروف مقطع در مصحف یعنی در قرآن کریم به این شکل علیف آره قرآن کریم علیف لم چرقمی میخواند قاریم درست شد؟ ببین ما یه نر علم نمیخوانیم دیگر خب علم، س... این که خونده نمیشه مثلاً بلکه هر کدمش را به شکل قطعا قطعا یا جدا جدا شده میخانیم تمام تا اینجا؟ خوب منظورش همین هست در هم نوشته شده که بیستونو سوره از سوره های قرآن کریم با همه حروف مقتعه آمده و آغاز شده و نقرع على اسم حروف ها مقتعه و میخانیم با اسم حرف های این بیستونو سوره به شکل جدا جدا و هی سور و این همو سوره های بیستونو گونه هست بقره یک، آل امران، دو، آخرش هم القلم ال... ال... ال... ال... ال... سعیه شد؟ سوره قطع آه، بیستونو سوره آغازش همه خروف مقطعه آمده سعیه شد؟ عربی خب مثلا سوال منه که چند کم سوره تو جت فیها حروف مقطعه چند سوره در حروف مقطعه وجود داره نوشتمونیم که 29 سوره خب این 29 سوره خب طبعا اونطوری سوال نمیشه که کدوم کدم سوره هست چون چون نمیگیرنه آره. دو جمعینه داره ولی سوره های نمیاس از بقره شروع تا قلم. برسد؟ آره. نکته ای که اینجا قابل تأمل هست اینه که جالب است علی تعالی حق النمسکو یک جمله اعتقادیست است دیگه نه؟ هست یا نیست؟ راه علی حقی است که ما به این راه آه، آه، این راه راه موکامل جالبی قضیه اینه که هم این جمله جمله اعتقادی و هم حروف مقطعه 14 تا است. موضوع 14 داریم دیگه آره اینا قابل تعامل پس نه آره مثلا نگاه کنن الف لام میم سه تا حرف درست شد؟ الف لام میم صاد هم سه حرف به پس چهار تا. یاسین خب همه حروف 4 تا با اضافه دو تا حرف دیگه کشو 6 تا. خامیم همه 6 تا حرف با اضافه ها شد هفتا تا. این هفتا میمش قبلا بود. اینطوری حساب شده فامدیم دیگه نه؟ آره. 29 سوره حروف مقطع داره که وقت همه این کلمات رو جمع کنیم چهارده تا حرف باوجود می آید درست مثلا، با. در الیف لومیم آمده در الیف لومیم ساده هم آمده فقط در یک چی می می یا می چی ها حساب چون که قبلا گرفتیم صحیح شد؟ آه همینه منه آنجا آقا بقید یک اجبار شد آه یک اجبار حساب نمیده غروف های تازه و جدید و بازه دیگر تمام ها می گ وصول الله على سيدنا محمد و آلها القادرین.